مجید عزیزم سلام از اون قرار اول بعد از موتت ها تو سیاونه شهید با روبروی بانک انسار چه تو با یه ماشین دیگه ای بودی و من با یک ماشین دیگه امروز حدود 8 سال میگذاره مهر 97 که تو وارد دفتر شدی شاید از ابتدا نبودی ولی تلاشات از روز اول از دهه اول گواهاش موجوده قطعا شرکت با حضور تو بهتر شد همه چی روتین تر شد و همچنان این روتینیو و بهتر شدن ادامه داره شاید اندازه خیلی ها کار کردی گاهی روزا اندازه 3 نفر 4 نفر کار کردی و این هنر رو در واقع توانایی تو به شدت برای من قابل احترامه این روزهایی که تو دیدی رو شاید خیلی از بچه ها این شرکت ندیده باشن روزهای سختی روزهای نداری و حتی روزهایی که ما به مرز برشکستگی رسیدیم تو با یک جمله یک کلمه یک ایده ما را از اون وضعیت دراب بردی این ها همش برای من با ارزش و قابل احترامه امیدوارم که همون جوری که شروع رسمی کار کردنمون با هم دیگه بوده شروع شرکتی کار کردنمون با هم دیگه بوده در کنار هم دیگه یه روز اینجا بازنشسته بشیم بریم بشینیم یه گوشه ای حالا هر کسی پرشمه اینجا رو دستش گرفت ما نگاش کنیم و بگیم که این بعضی بوده که ما کاشتیم حالا بقیه دارن ازش استفاده میکنن اینشالله که در کنار سارای عزیزم حالت خوب باشه لذت ببری به هدفات برسی نمیدونم هدفات چیان ولی امیدوارم که تک تکشون رو تیک بزنی و روزهای خوبی در انتظارتون باشه زندگی مشترک شروعش همه اینها و در قسمت دوم آرزوم امیدوارم که یک در واقع اتفاق او به دیگه اینه برای من که تو همچنان کنار ما باشی و ما ادامه بدی و من به شخص لذت ببرم از این که دارم باید همکاری میکنم دارم باید همراهی میکنم و شاید بعضی جا دارم درس پس میدم بهت ایشالله که حالت خوب باشه حال سالای عزیزم خوب باشه و اتفاقات خوب نصیب شما بشه در آخر این که مثل برادر میبینمت و امیدوارم که این پیوند ای که بین من و شما هست تا عبد باقی بموند